بینش تقدیم میکند آخرین صلیبی وزیر دفاع آمریکا که از ارتش خود متنفر است نویسنده احمد مولانا پژوهشگر مطالعات امنیتی و سیاسی آخرین صلیبی با الهام از تجربه صلیبیهای مسیحی که در قرن دوازدهم لشکر مسلمانان را عقب راندند به آمریکایی ها توصیه میکند که امروز همان شجاعت را در برابر اسلامگرایان گرایان گیرند در کنار کمونیستای چینی و جاه طلبی های جهانیشان اسلامگرایی خطرناکترین خطرناک تهدید برای آزادی در جهان است نمیتوان با آن مذاکره کرد یا همزیستی داشت بلکه باید به حاشیه رانده و در هم شکسته شود گوینده این سخنان صاحب پرنفوذترین مقام در واشنگتن است کسی که بر سه میلیون سرباز و کارمند غیر نظامی با بودجه‌ای بالغ بر 895 میلیارد دلار در سال جاری نظارت دارد. او کسی نیست جز وزیر دفاع جدید آمریکا پیت هکست. این مقاله به زندگی نامه پیت هکست و, برجسته ترین ایده ها و بر جسته‌ترین ایده‌ها و نظریه‌های جنجال برانگیز او می‌پردازد. منبع اصلی این بررسی نوشته‌های خود او در کتاب‌های متعددش، مانند، جهاد صلیبی آمریکایی مبارزه ما برای آزاد ماندن نبرد برای ذهن آمریکایی ریشه‌کن کردن یک قرن آموزش غلط و جنگ علیه جنگ جنگجویان است همچنین به این موضوع پرداخته می شود که او چگونه پس از اخراج از ارتش آمریکا توانست به مقام وزارت دفاع برسد و از یک مخالف ترامپ به یکی از سرسختترین حامیان او تبدیل شود هکست عادت دارد در اظهارات کتاب و برنامه تلویزیونیاش، فاکس و دوستان آخر هفته که پربیننده ترین برنامه صبحگاهی در ایالات متحده است به همه سوش لیک کند. از جمله گفته مشهور او می‌توان به این موارد اشاره کرد. حزب دموکرات از آمریکا متنفر است. از قانون اساسی ما پرچم ما ایمان و باورهای ما متنفر است. ما همکارانی با رفتار محترمانه یا صرفاً رقابای سیاسی نیستیم. ما دشمنیم، یا ما پیروز میشویم یا آنها. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دادگاه کیفری بین المللی، همه این نهادها امروز به دنبال تضعیف ایده و واقعیت مرزها و شهروندی هستند. اسلامگرایی که مستقیما از اسلام، زندگی محمد و قرآن نشأت گرفته، منسجمترین و تهاجمیترین جهانبینی امروز در سیاره زمین است. پا جای پای اولین صلیبی ها این سرباز خشمگین در سال 1980 در نسل پنجم یک خانواده مهاجر نروژی به دنیا آمد و به همین دلیل چهرهی مشخصا اسکاندیناویایی دارد اما برخلاف اجدادش پس از آنکه کاملا در جامعه آمریکا زوب شد به زبان نروژی صحبت نمی‌کند و از طرفداران تک زبانی در داخل ایالات متحده است هکسد در ایالت مینسوتا و در خانواده مذهبی که هر هفته به کلیسا می رفت بزرگ شد. اما در کودکی چندان مذهبی نبود. در جوانی تحت تاثیر سخنرانی واعظ مشهور انجیلی بیلی گیراهام در سال 1999 قرار گرفت. همان سالی که برای تحصیل در رشته فلسفه سیاسی وارد دانشگاه پرینستون شد. با اینکه مدرک کارشناسی خود را از این دانشگاه گرفت، اما همواره از این واقعیت گلمند بود که پرینستون به ایمان پشت کرده و به دجی برای چپگرایان تبدیل شده است، در حالی که در اصل در سال 1746 به عنوان مرکزی برای تربیت کشیشها تأسیس شده بود. او تحصیلات عالی خود را در مدرسه حکمرانی جان اف کنیدی در دانشگاه هاروارد ادامه داد و در سال 2013، مدرک کارشناسی ارشد در سیاستگزاری عمومی دریافت کرد اما بعدها این مدرک را پس داد و به دانشگاه بازگرداند با این استدلال که هاروارد به اردوگاهی برای تلقین های چپگرایانه به دانشجویان تبدیل شده است هکست فعالیت نظامی خود را همزمان با تحصیلات دانشگاهی پس از حملات سپتامبر 2001 آغاز کرد پس از فارغ و تحصیلی در سال 2003 به عنوان تحلیلگر بازار سرمایه در شرکت بر مشغول به کار شد اما شغل پردرآمد خود را رها کرد تا به قول خودش به شکار وهابی ها بپردازد همان هایی که به واشنگتن و نیویورک حمله کرده بودند او در سال 2003 به عنوان افسر پیاده نظام آموزش دید و در سال 2004 در زندان گوانتانامو در صفوف گارد ملی خدمت کرد دوره ای که آن خسته کننده توصیف می کند، زیرا در آنجا به قول خودش از های اسلامگرا نگهبانی میکرد او در سال 2005 به عراق منتقل شد و در لشکر 101 هوابرد در سامرا و مثلث سنی جنگید ای که شاهد اوجگیری مقاومت عراق در برابر اشغال بود هکست با قوانین درگیری ارتش آمریکا کنار نیامد و به سربازانش دستور داد با آنها پای بند نباشند. اجازه نخواهم داد این مزخرفات وارد مغزتان شود. آقایان، اگر دشمنی را دیدید که فکر می‌کنید تهدید است، با او درگیر شوید و نابودش کنید. دشمنان ما باید گلوله دریافت کنند، نه وکیل. او وضعیت یک مجروح عراقی پس از اسارت را اینگونه توصیف می‌کند. کسی به او اهمیت نمیداد، زنده ماند یا مرد. آن موقع برای مهم نبود و امروز هم نیست. هر کمکی به او نوعی لطف محسوب می شد. هکست همچنین در سال 2012 در افغانستان به عنوان مربی ارشد در آکادمی آموزش ضد شورش در کابل خدمت کرد. او مفهوم جنگ را از تجربیات خود اینگونه توضیح می دهد. جنگ زمینی با تعداد افرادی که می توانید در یک مکان و در یک زمان سلاخی کنید تعریف می شود. چیزی که اراده و توانایی دشمن برای جنگیدن را محدود می کند. او این را به طبیعت گناه آلود و خودخواه بشر نسبت می دهد. این تجربیات تأثیر عمیقی بر روان هکست گذاشته است. او روایت می کند که هنوز نیمه های شب با یک کابوس تکراری از خواب می پرد. در یک معمولیت با واحد نظامیم در خاک دشمن هستم. اما به شدت احساس استراب می کنم، و فریاد میزنم، هم کجاست؟ نمیتوانم توفنگم را پیدا کنم، توفنگم گم شده، من ناتوانم. این معموریت ها به او فرصت داد تا با اخشار مختلفی در جهان اسلام و عرب ها در تماس باشد. او میگوید، من زمان قابل توجهی را در جهان عرب و اسلام گذراندم، بیشتر از اکثر آمریکایی ها، در میدانهای نبرد علیه مسلمانان و در کنارشان گشتم. ساعتها در گفتگوهای عمیق دینی و فلسفی با مسلمانان بودم. از مردم عادی و تحصیل کردگان در غرب گرفته تا مذهبی و غیرمذهبی، امامان مساجد تندرو و میانرو و شیعه و سنی. در نتیجه، بر اساس نوشته‌هایش دیدگاهی نسبت به اسلام و مسلمانان در او شکل گرفت که بعدها با آن خواهیم پرداخت. اما این دیدگاه هدفی را در زندگی برای او مشخص کرد. هدف جهانی من نابودی افرادگرایان اسلامی است. پس از پایان خدمتش در خارج، هکست به آمریکا بازگشت و در سال 2012 برای ورود به مجلس سنا از ایالت مینسوتا تلاش کرد، اما در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری شکست خورد. او همچنین دو سازمان برای کوهن سربازان تأسیس کرد، اما به استفاده از بودجه آنها برای مقاصد شخصی متهم و مجبور به ترک آنها شد. هکست عضو شورای روابط خارجی شد که مجله فارن افرز را منتشر می‌کند اما در سال 2016 با این استدلال که شورا در حال ترویج یک دستور کار مترقی و جهانیگرا و مخالف منافع آمریکاست از آن استعفا داد او خدمت فعال در ارتش را در سال 2014 ترک کرد اما پنج سال بعد دوباره به گارد ملی پیوست و در سال 2020 در جریان اعتراضات مقابل کاخ سفید به قتل جورج فلوید در عملیات ضد شورش شرکت کرد. هکست معتقد است فلوید به دلیل اعتیاد به مواد مخدر درگذشت، نه ضرب و شتم پلیس. پایان کارنامه نظامی هکست در سال 2021 رقم خورد، زمانی که ارتش از مشارکت او در تامین امنیت مراسم تحلیف جو بایدن خودداری کرد. دلیل این تصمیم طبقه بندی هکست به عنوان یک ملیگرای افراطی پوست توسط ارتش بود. پس از آنکه دو تن از همرزمانش خالکوبی صلیب اورشلیم نماد پادشاهی صلیبی بیت المقدس در دوران جنگ‌های صلیبی را روی بدن او گزارش کردند. این ترد شدن برای هکست بسیار سنگین بود و سرانجام ارتش در اول ژانویه 2024 حکم اخراج او را صادر کرد. او چگونه فکر می کند؟ گردش به چپ ممنوع. هکست نمونه ای از یک شخصیت انجیلی آمریکایی است. او معتقد است کتاب مقدس به ویژه وقتی با میراث آتن و روم ترکیب شود، بنیان تمدن غرب را تشکیل می دهد. او حملات شدیدی را علیه سکولاریسم آمیخته با ایده های چپگرایانه ترتیب می دهد و استدلال می کند که این تفکر دولت را به خدا تبدیل کرده است. او موزی ضد دموکراسی دارد با این استدلال که دموکراسی به هر کسی که بیشترین رأی را بیاورد حق تعیین قوانین را می دهد، در حالی که او به حقوق خدادادی بشر معتقد است او میگوید ما باید کشورمان را دموکراسی ننامیم زیرا اینطور نیست بنیانگذاران ما ایده دموکراسی را رد کردند آنها یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی را انتخاب کردند هکست چپگرایان را دشمن میداند و معتقد است حزب دموکرات به حزبی سوسیالیستی و جهانیگرا تبدیل شده که از آمریکا متنفر است و به دنبال نابودی حاکمیت ملی است او استدلال میکند که چپگرایان بر آموزش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، هالیوود و حتی ارتش مسلط شدند و وظیفه آمریکایی‌ها رسوا کردن، تحقیر، ترد و شکست دادن آنهاست کردن ارتش هکست معتقد است که نقش ارتش تبدیل جوانان به مردان جنگی است به همین دلیل او جنگی تمام عیار را علیه های ادغام زنان در واحدهای رزمی، پذیرش افراد تراجنسیتی و آنچه دستور کار فمینیستی و محیط سیستی می‌خواند به انداخته است او این سیاستها را تلاشی برای اخته کردن نیروهای رزمی می‌داند که به تضعیف توانایی سربازان و کشته شدن آنها در نبرد منجر خواهد شد. او معتقد است چپگرایان از طریق انتصابات ایدولوژیک بر ارتش مسلط شدند و ژنرال ها به جای جنگجویان شریف به بروکرات های کارامدی تبدیل شدند که پس از بازنشستگی در شرکت های پاداش خود را دریافت می کنند. او خواستار اخراج بسیاری از ژنرال های ارشد و تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ است، زیرا معتقد است وظیفه ارتش جنگیدن است، نه دفاع کردن. پس از تصدی وزارت دفاع، هکست اخراج ژنرال های منصوب وزیر سابق را آغاز کرد و در حال بررسی طرحی برای کاهش 8 درصدی بودجه پنتاگون و اخراج بیش از 50 هزار کارمند غیر نظامی است. آمادگی برای نورد با چین هکست چین را خطرناکترین رقیب آمریکا می‌داند که در حال گسترش نفوذ خود در سراسر جهان است. او خواستار توقف انتقال فناوری آمریکایی به چین و بازگرداندن کارخانه‌ها به خاک آمریکا حتی به زور شده است. او هشدار می‌دهد اگر اکنون با چین کمونیست مقابله نکنیم روزی برای سرود ملی چین به پا خواهیم خواست. او همچنین سازمان ملل و ناتو را هایی از جهانیگرایی احمقانه می‌داند که باید منحل یا بازنگری شوند و معتقد است آمریکا باید منابع خود را برای منافع خودش حفظ کند. کافر چرا اسلام او را می‌ترساند؟ اسلام جایگاه ویژه‌ای در تفکرات هکست دارد. از منظر ایدئولوژیک او اسلام را دینی تهاجمی می‌داند که از زمان پیامبر تا کنون در حال جنگ با غیر مؤمنان بوده. و با شمشیر گسترش یافته است. او معتقد است چون اسلام یک دین، یک نظام حکومتی مبتنی بر شریعت و یک سبک زندگی است، نمیتواند با هیچ نظام دیگری همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد. از منظر تاریخی، او جنگ‌های صلیبی را عاملی برای کند کردن پیشروی اسلام در اروپا نگرانی نگرانی‌های جمعیتی نیز در نظریات او برجسته است. او درباره افزایش جمعیت مسلمانان در اروپا و آمریکا هشدار می‌دهد و می‌گوید تحمل اسلامگرایان به معنای تسلیم شدن در برابر آنهاست. موزه خصمانه هکست علیه اسلام یکی از دلایل نفرت او از چپگرایان است، زیرا معتقد است آنها راه را برای نفوذ مسلمانان در غرب هموار کردند. او توصیه می‌کند سلیبی های آمریکایی باید همان شجاعت سلیبی های قرون وستا را در برابر اسلامگرایان امروز بکار گیرند اسلامگرایی باید به حاشیه رانده و در هم شکسته شود اسرائیل خط اول دفاع در نبرد پروردگار هکست به دلیل تربیت انجیلی خود علاقه عمیق به اسرائیل دارد او حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل را اینگونه توجیه میکند اگر اهمیت اسرائیل و جایگاه محوری آن در تاریخ تمدن غرب را درک نکنید تاریخ را نمیفهمید اگر آمریکا را دوست دارید باید اسرائیل را هم دوست داشته باشید خداوند در کنار قوم اسرائیل علیه دشمنانشان ایستاده خطوط مقدم جبهه برای آمریکا همان خطوط مقدم ایمان ماست که اوشلیم و اسرائیل است تحسین رهبر بزرگ صلیبی در ابتدا هکست از منتقدان دونالد ترامپ بود اما زمانی که دید ترامپ مانند گاو در مغازه چینی فروشی بدون ترس با هر کسی مقابله می‌کند نظرش تغییر کرد او در ترامپ رهبر صلیبی را دید که آمریکا برای از بین بردن چپگرایان و حمله به دشمنان به آن نیاز دارد این دو در مورد حزب دموکرات رهبری ارتش مهاجرت غیرقانونی، چین، ناتو و سازمان ملل اتفاق نظر دارند و همین امر منجر به انتصاب او به عنوان وزیر دفاع در دولت دوم ترام شد. آموزش و بسیج هیچ مسئله داخلی به اندازه آموزش برای هکست اهمیت ندارد. او با استناد به سخن آبراهام لینکون که فلسفه مدرسه در یک نسل فلسفه دولت در نسل بعدی خواهد بود خواستار تمرکز بر آموزش در کلاس‌های درس، خانه‌ها و کلیساها برای مقابله با چپگرایان است. او از طرفداران آموزش در خانه، لغو وزارت آموزش و نفوذ در هیئت مدیره مدارس برای پیشبرد برنامه‌های راست کار است. نتیجه‌گیری: هکست از آن دارد که فردی بی‌نقص نیست. بسیاری از بستگانش به دلیل عقایدش با او قطع رابطه کردند با این حال او امروز دیگر مجری تلویزیون یا نویسنده کتاب نیست بلکه یکی از قدرتمندترین مناسب جهان را با بودجهی هنگوف در اختیار دارد این موقعیت به او اجازه می‌دهد تا ایده‌های خود را به سیاست‌ها و اقداماتی تبدیل کند که بسیاری از کشورها از جمله فلسطین، عراق، سوریه، یمن ایران و لبنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد